جهان زلزله در سراپای ملکوت افتاد سقف آسمان ها همچون سقف بلورین گنبدی در هم شکست و فرو ریخت و ستارگانمان در صحرای عدم پراکندند و آفتابمان سیاه گشت و ماهمان همچون گلوله پمبی که در گذر تند بادهای دیوانه حلاجی کنند از هوا وحشت میبارید. طوفان های سراسیمه همچون ارواح خشمگین از کناره‌های جهان برمیجستند. قیامت وحشت و طوفان و ظلمت. جنون عالمگیر عدم آرام گرفت. همه چیز، همه کس، همه عالم ماورا به گونه ذرات هوا در نور، به گونه ذرات قوار در باد، در کویر عدم آرام نشسته بودند. سکوت بود و بیکرانگی، در سیمای عدم حراسی ناشناس اما عظیم موج میزد در سکوت عدم انتظاری نیرومند کمین کرده بود. ناگهان ای و لرزهای و رعدی که از غذب وجود عدم را در هم آمیخت برخواست، فرو افتید، ذرات ناگهان در صحرای بیکران عدم پراکنده شدند. عالم زر به هم برآمد و در سینه فراخ ماورا صفی پدید آمد از همه آدمها آنها که رفتهاند و هستند و همه آنها که خواهند آمد. از ازل آغاز میشد و بر سینه کویر نیستی تا ابد ادامه داشت. همه را به زنجیر استوار جبر به صف کشیده بودند هیچ کس به حکم قدر پلک توانست زد و من نخستین بار با وحشت و استراب و تنهایی و انتظار آشنا شدم آشنایانی که دیگر لحظه‌ای مرا رها نکردند از همه سو عدم بود پایین و بالا و چپ و راست و همه جا سراسیمه و دردناک همسرم نبود کودکانم کجایند چه شدند انتهای صف در دروازهای فرو میرفت و گروه گروه به فرمان خدا در آن فرو میافتادند افتادند چاه سیاه و وحشتزایی بود دهانه فراخ و آلودش به گونه وای این صفه در بند کشیدگان تقدیر را میبلید. چاه وای نام داشت. صف پیش میرفت و گام به گام من بدان دان نزدیک میشدم و حراس و استراب بیتاب ترم میکرد. او کجاست؟ آنها کجایند؟ میدانستم که او نیز یکی از این حلقه های زنجیر مشیت است. نمیتوانستم برگردم و به قفا بنگرم تا آنجا که نگاه های پریشانم توان داشتند پیش رویم را مینگریستم. اما او نبود یک چهره آشنا نبود قیبت او همه این چهره ها را بیگانه کرده بود نبودن او همه این بودن ها را بیهوده می‌نمود. زشت و سنگین و تحمل ناپذیر. هوا مسموم و کین آلود دشمن بود دمزدن زدن شکن زنده بودن مشقت او کجاست پشت سر من ایستاده است؟ آیا پیش از من رفته است ؟ نمیدانستم چگونه باشم؟ نمیدانستم باید چه دردی را احساس کنم و این خود درد دیگری شده بود. اگر پیش از من رفته باشد او را در آنجا خواهم یافت. اگر پس از من بیاید، آنجا به من خواهد رسید آنجا بی او چه کنم اگر او را دیگر نیافتم بودن را بی او چگونه تحمل کنم با زندگی خالی در آن دنیایی که میگویند همه سنگ و خاک است و جماد و جانور و شبه آدمهای چرنده چگونه میتوانم توانم دم زنم در آنجا که این مجسمه های سفالی دسته دسته بر روی خاک در تلاشند و در لجنزاری از شهوت و کینه و تمه شتابان و حریص در هم میلولند و میزایند و میبلند و میدرند و میمیرند. تنها بی او بیست سال سی سال شصت سال هفتاد حتی هشتاد سال آن هم آن سال آن دنیا. هر کدام سی صد و شست و پنج شب هر شبی نه هزار و دویست و چهل سانیه هر سانیه به سنگینی کوهی بر روی سینه مرد خاری در چشم استخوانی در حلقوم، هر سانیه راهی پایان ناپذیر بر آتش ناگهان فرو افتادم دیگر هیچ چیز احساس نمی کردم ظلمت مطلق سکوت مطلق عدم مطلق مثل اینکه فقط میدانستم که دیگر هیچ نیستم. هیچ نیست؟ نمیدانم چقدر طول کشید. یک قرن صد قرن، هزاران قرن چه میدانم؟ آمدم و آمدم و یادم نیست. تا احساس کردم که در رود شتابان از خون افتادم خونی. گرم و پرجوش، رودی، پرتپش و بیقرار. رودخانه‌ای با هزاران پیچ و خم، بستری نازک و دراز و کوچک و بزرگ، پر از خونی که دیوان بار در آن میرفت و میامد و میرفت و میامد و سالها چنین بود. شب و روز، هر لحظه، هر سال، تا شست و اند سال. و من هر لحظه در بستر این رودهای پیچاپیچ با باز ضربه نیرومند و تغیانی خون به پیش رانده می و میافتادم به درون گردابی از خون و باز برمیگشتم و می به درون بستر رودی و باز باز ضربهی رانده می شدم به انتهای راه و باز با کوبهی به پس رانده می شدم و می به درون گرداب خون و هر لحظه یک بار و هر روز هزاران بار و هر سال میلیون بار و در شست و سال چه می چند بار و آنجا من در کنار این گرداب خون گرم و پرخروش و پر جنبش هر لحظه خانه شگفت پر اسراری را می دیدم که در ماشت می گنجید اما در همه عالم نمی گنجید کوچکتر از یک سراحی شراب بود و بزرگتر از یک منظومه شمسی، پر از غقا و قرق سکوت، پرورشگاه آرزوها، سرچشمه عشق ها، معبد ایمان و کعبه خدا. همه دانستن و دوست داشتن و تپیدن و انتظار و رنج و شادی و ایمان و عشق در آنجا دست نیرومند و نامرئی، شب و روز گرم آفریدن بود. چه می آفرید؟ پاکی می آفرید، و زیبایی می آفرید، و خوبی می آفرید، و ارادت می آفرید، عفت می آفرید، و بینیازی می آفرید، و سرفرازی می آفرید، و دلیری می آفرید، و دوستی می آفرید، و گذشت می آفرید، و عاطفه می آفرید، و چه ها و چه ها. خانه پایههایش از اعتقاد، دیوارههایش از افت، سخفش از قرور، سردرش اسیان و درش تبازو، حریمش آزادی، فضایش اخلاص و هوایش گرم از عشق، روشن از حکمت، خانه‌ی خدا بود، خانه نشیمن خدا، خلوت وسال زیبایی و مر، میعادگاه روح و خداوند. چه بگویم ناگاه افتادم به جویبارهای دیگری و گرداب توفانهای دیگری و سالهای بسیار اینچنین گذشت تا از جویبار خونفرو افتادم به خاک زرد خاک پاک و نرمی به لطافت مهر به تپش آفتاب در خون سرخ بودم و افتادم به سینه خاک زرد ساغه سپید صبح بودم در خون سرخم زادند و در خاک زردم نشاندند و در زیر نور سبزم رویاندند و نهالی شدم بی قرار روییدن و سرشار شکفتن و آرزومند شکوف بستن و شور و شوق صدها جوان در من بیتاب چشم گشودم آسمان بود آسمان سبز آبی و زرد کویر و شبهای ستاره ریز بهشتی کویر با روزهای آتشخیز دوزخی کویر آسمان سیمای آرام بخش و مقدس اهورا و زمین خفتنگاه پرحول اهریمن و من در برزخ این دو یک تردید در باغ بیبرگی زادم و در سربت فقر گشتم و از چشمه ایمان سیراب شدم و در هوای دوست داشتن دم زدم و در آرزوی آزادی سر برداشتم و در بالای قرور قامت کشیدم و از دانش تعامم دادند و از شعر شرابم نوشاندند و از مهر نبازشم کردند و تا حقیقت دینم شد و راه رفتنم و خیر حیاتم شد و ماندنم و زیبایی عشقم شد و بحانه زیستنم دنیا پر از هرچه بجویم جستنی ها و خواستنی ها و دیدنی ها و بردنی ها و براوردنی و کشف کردنی ها و رنگ ها و تر و حادثه ها و راه ها و منزل ها و زیبایی و سرزمین های و و زندگی سرشار از هرچه بخواهم، بهشت همه خواستنها، سفره گسترده همه معائدهها باغ پر از همه میوه های پرشهد و جنگل، نهرهای جاری، سایه های سرد و چشمه های زلال و بارانهای تن پربر و صبحهای پرنشات و جنبش و امید و سیرابی و لذت و رسیدنها. اما تا به برگبار نشستم برف و کولاک گرفت و سیلی سرد زمستان گوشم را برد و برف باد بناگوشم را سرخ کرد و با چند تک درخت بی بهار جوان در باغ ابن قهطبه و زندان سندی ابن شاهک در ازای امام مسموم و داغ سرخصی شهید و شبهای سیاه شکست آل علی و قلع و قمع شیعیان و غروب نابهنگام آفتاب ایمان و امید و چیرگی مجدد حکومت سنت و جماعت و خمول تشیع و زوال عدل و ازمهلال امامت پای فرزند علی که به زور و تزویر ولایت اهدش دادند تا ولایت علی را از بن برگیرند و خلافت دیرپای فرزند عباس بنگیرد گیرد و بالاخره در قرنهای بدخاطره و حولناک پس از قتل ابو مسلم و تاهر و بن زید و مرکهای مرموز آل سرخسی و قتل مستور امام مظلوم و جان گرفتن قوم عرب و خاری ایرانیان نجاده و خمول خلق و احیای اشراف و سلطه اوباش و زجر و حبس احرار و قتل عام هواخواهان بنی علی و پیمان شوم و ناپایدار میان عربان بنی عباس و غلامان ترک و خاجگان ایرانی رویدم و حماسم را در ایام دشوار همسازی دین و دنیا و بدسازی شیخ عبالغاسم کرگانی مسکر توس با سلطان غزنه سرودم و در فصل برگ ریزان برگ افشاندم و در یخبندان شکوفه بستم. شکوفه هایم نه شکوفه گلی و نه تلیعه سمری که صدها چشم انتظاری بود که به هزاران امید میگشودم تا در این متن متحجر و هاشیه متعفن این شهر شهادتگاه مگر شاهد رویشی باشم از تبار درختان نژاده گز و تاق که در سینه خشک و خلوت حول و سکوت مرگ به پای خیش قامت راست میکنند و به آتش سر می کشند بی آب و آبادی و بی چشم داشت نوازشی که من فرزند کبیر می‌دانم و می‌بینم که رویش این درختان صبور و شجاعی که در جهنم می‌رویند نه رویش که شورش است و ایستادنشان ایستادن آرام و ساکتشان در سرزمینی که برای ماندن هر روز جهادی باید نه ایستادن که ایستادگی است و من صحابی تنهای هود می‌دانم و می‌بینم که در این قوم عاد همه چیز و همه کس باد آوردگانند و یا به باد رفتگان و از این سموم که بر طرف بوستان می درختان گشن بیخ شناور دمادم از بون می و همچون هشیشی لرزان در دستهای بازیگر و ناپیدای باد در این صحرا به رقص میآیند آیند و گهگاه اینجا و آنجا بر های جویبار و لبه چشمه آب و سایه ها و باروهای بلند و دیواری دیواریهای امن و خانهای نشیمن کبیر، بیتهای خوشرنگ و ظریف و تربیت یافته و نرم و تورد رانیز میبینم، یا سردر گریبان جنون فرو افکنده و از ترس، در پس وقار شکوه مند پر نجابت عمیق خیش به خواب تسلیم آرام و ذلت آبرومند خود فرو رفتهاند و یا اگر قدر و عقل این مجنونان هفت خط رند دجال فعل ملحد شکل را ندارند به ادعا و خودنمایی دست و بال میافشانند همچون خود از باد و در باد میلرزند و هم می ترسند و هم میرقصند رقصند که خوش رقصی را شنیده ای؟ اما اینکه میگویم ترس رقصی است در جمع جوانان انتلکتویل قوم آد.